بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض عدم و احترام، خدمت عزیزان و بزرگوارانی که این کلیپ رو میبینم. من فاطمه سرابندی هستم یک از زبان عربی در کلاس‌های استاد الهاشمی میخواستم نظرات خودم را در مورد کلاس‌هایشون بیان کنم. خب حتما این موضوع رو شنیدین و یا در فضاهای مختلف دیدین که اساتید مختلف حتی در فضاهای مختلف حالا آموزشی یا حتی در فضاهای مختلف اینترنت که شما ببینید میگن که زبان عربی جز سختترین زبان های دنیا به شمار میاد این موضوع تا زمانی برای ما برای کسایی که میخوان زبان عربیات بگیرن صدق میکنه که با استاد الهاشمی کلاس نداشته باشین بله سخترین زبان دنیا به شمار میاد ولی وقتی که با ایشون کلاس دارین زبان عربی رو میتونیم بگیم که جز شیرین ترین و در عین حال راحت ترین و قشنگ ترین زبان دنیا بدونین به خاطر چی این حرف رو میگم؟ به خاطر اینکه استاد الهاشمی با تسلطی که بر مطالب عربی، زبان عربی و لحجه های مختلف عربی داره به آسون ترین وجه ممکن این مکالمه و یا قواید عربی رو به شما تدریس میکنن. و مهم ویژگی که میتونیم نسبت به استاد داشته باشیم این که اولین کاری که میکنن هدف شما را از آموزش زبان عربی میپرسند و حالا میتونین هدف های مختلفی داشته باشین حال هدف تجارت باشه هدف آموزش باشه هدف ادامه تحصیل در این رشته باشه وقتی که استاد متوجه موضوع و اون هدفی که از شما هستن میشن خب براتون یه برنامه خاص رو میشینن و طبق همون پیش میرن و باعث میشه که شما به اون هدفی که میخواییم برسین و این بزرگی ترین ویژگی کلاسیشون میتونن باشن و یکی دیگه ویژگی خود استاد اینه که دل سوزانه برای شما زحمت میکشن برای من زبانمون زحمت میکشن و سعی میکنن که از کلاسشون راضی و و اینکه این کلاس رو به بهترین وجه ممکن به پایان ببرید و یکی از ویژگی‌های ایشون اینه که شما دوست دارین که همش پایشون کلاس داشته باشین به خاطر اینکه انقدر این کلاس رو جذاب و شاد و بسیار عالی توضیح میدن که شما دوست دارین که از محضرشون استفاده کنین و این توصیه من به شماهایی که قراره که در آینده با ایشون کلاس داشته باشین مطمئن باشین که در کنار ایشون بودن و یاد گرفتن از ایشون هیچ موقع پشمون نمیشین و علاوه بر این که علاقمند به زبان عربی میشین و علاقه‌مند به رفتارها و اخلاق و منش خود استاد میشین و استاد هاشمی هیچ کوتاهی در کلاس‌های خودش نسبت به زمان آموزهای خودش نداره به شاگردان خودشون نداره و سعی میکنه که بهترین خودش رو برای شماها بذاره تا شماها بهترین های زبان عربی بشین. و شاید یک روز همکار ایشون بشین تا در کنار ایشون بتونین که به اطلاعی زبان عربی، و بالا بردن سطح خودتون یاری کنندتون خیلی ممنونم که این کلیپ رو گوش دادین انشاءالله موفق باشین خدا نگهدار